فصل ششم تجزیه امپراتوری منگوغا آن نبه چنگیز میخواست که فرمان پدر بزرگ خود را برای تسخیر جهان تجدید کند او سلطنت خود را با نقشه هایی برای دلشکرکشی عمده آغاز کرد یکی بر ضد سلسلی سونگ در چین جنوبی و دیگری از طریق ایران به سمت سوریه بین و نهرین و مصر منگوغاان و برادرش غوبیلای بران شدند که لشکرکشی ضد سلسلی سونگ را خود فرماندهی کنند در حالی که هولاگو دیگر برادر منگوغاان معمور حمله به خابر میانه شد بنابرای علی که کاملا مشخص نیست مغلان پس از عقب نشینی در سال 1242 میلادی علاقه به اروپا را از دست دادند و هرگز دوباره آن را به طور جدی مناسب تسخیر به شمار نیاوردند. اما آنها به ایران به عنوان معدن طلایی از تعلیم، فرهنگ، هنر، دانش و زیبایی نظر دوختند. بغداد نیز یک واحی تمدن بود و کتاب های فراوانی از ادبیات فارسی و عربی داشت و دانشگاهی عظیم به شمار می رفت. خزانه شخصی خلیفه در بغداد یکی از بزرگترین خزائن جهان بود. مغولان نمی توانستند بدون متی کردن چونین تمدن شکوفایی در نزدیکی خود به سادگی به آن اجازه دهند که باقی بماند. سپاه هولاگو در سال 1255 میلادی از رود جیهون در آسیای میانه عبور کرد. مأموران مغل ماه ها پیش از آن اعظام شده بودند تا تمام چراگاه ها را در همه مناطقی که احتمال می هولاگو از میان آنها عبور کند، غرق کنند. مأموران مغل همه را از چراندن گله های خود در آن نواهی معن کردند زیرا سپاه هولاگو برای اسبان، حیوانات بارکش و رمه های خود می بایست، علف داشته باشد. سپاه هولاگو سپاه هولاگو به باروت چینی و جدیدترین تجهیزات مهندسی محاصر مجهز بود کمانداران سواره هولاگو تحت فرمان سردارانی بودند که همراه با سبوتهای و چنگیزخان به عملیات نظامی پرداخته بودند سپاه او با سربازانی مسیحی از گرجستان تکمیل شده بود سربازانی که از فرصت به دست آمده برای وارد آوردن ضربه بر مسلمانان لذت می بردند خبر آمدن سپاه هولاگو، سلاتین، امرا و فرمانروایان روایان سرزمین هایی را که زمانی جزوه امپراتوری خارعزم شاه بود به تسلیم وادار ساخت. آنها اعلام کردند که در برابر اردوی در حال حرکت مقاومتی نخواهند کرد. در ایران بود که مغلان با نخستین مانع خود روبرو شدند که فرقه مسلمانی محسوم به هش شاشین بودند. حشاشین که کلمه اساسینیشن به معنی آدمکشی ماخوذ از نام آن هاست در قلمروهای واقع در کوه های البرز به سر می بردند و سرداران مغول و مهندسان چینی می بایست استادی بسیاری به کار می بردند تا منجنیق های خود را به بالای آن شیب های تند بکشانند مغولان توانستند قلعه رکن الدین رهبر حشاشین را ویران کنند و او را به اسارت بگیرند سپس مغلان رکن الدین را غلعه به غلعه گرداندند و از هششاشین خواستند که تسلیم شوند هششاشین چه آنهایی که ترجیح دادند که بدون جنگ تسلیم شوند و چه بقیه سرانجام تماما به قتل رسیدند دو سال طول کشید تا مغولان هششاشین را در قلم روهای کوهستانی آنها پاک سازی کردند در سال 1258 میلادی هولاگو رشکر به بغداد پای تخت خلافای عباسی را آغاز کرد. سقوط بغداد. هولاگو با اعزام پیک هایی به نزد خلیفه بغداد خواستار تسلیم او شد. اما این حشدارها نادیده گرفته شد. مشاور اصلی خلیفه ابن الالغمی که یک مسلمان شیعه بود خلیفه را متقاعد کرد که دلیلی برای ترس وجود ندارد. در این ضمن، ابن الغمی که به سبب آزار مسلمانان شیعه به دست خلیفه برانگیخته شده بود مخفیانه به مکاتبه با سپاه مغول پرداخت و آنها را از وضعیت رقتبار استحکامات بغداد مطلع کرد بیست هزار سرباز پادگان بغداد که برای رویارویی با دشمن از شهر خارج شده بودند بیرون از حصارهای شهر اردو زدند مغولان شبانه به آنان نزدیک شدند صدهای نزدیک را شکستند و اردوگاه سربازان بغداد را زیر سیل قرار دادند. بسیاری از سربازان غرق شدند و بقیه که غافلگیر شده بودند به دست سواران سنگین اسلحه مغول به قطع رسیدند. در این ضم سایر تومان های مغول به حفر خندق و ساخت حسار چوبی دور شهر پرداخته بودند و در روز سیم ژانویه پرتاب سنگها با منجننیق ها آغاز شد از آنجا که سنگ های مورد نیاز برای منجنیق ها سه روز دیرتر از برنامه به آنجا می رسید سربازان می بایست سریعا سنگ فراهم کنند آنها سنگ های ساختمان های نزدیک را کندند تا به وسیله منجنیق به طرف حصارهای شهر پرتاب کنند پس از آنکه حصارهای شهر یک به یک فرو ریختند برداد تسلیم شد سربازان داخل شهر در یک صف از شهر خارج شدند و سلاح های خود را زمین گذاشتند و مغولان آنها را یک به یک به قتل رساندند. خلیفه و خانواده او از این سرنوشت معاف شدند. به جای آن هولاگو خلیفه و خانواده او را به مهمانی دعوت کرد و سپس به فرمان او آنها را در نمد پیچیدند و زیر سم اسب ها آنقدر لگدمالشان کردند تا مردند. این کار به سلسله خلفای خاندان عباسی که به مدت 500 سال بغداد مقر فرمانرواییشان بود، خاتمه داد. شهر غارت شد. هولاگو در جزیری در دریاچه ارومی خزانه ای ساخت تا سهم خود از غنائم بغداد را که انتقال آن در مسیر جنگ دشوار بود در آن جا انبار کند. مقلان به ابن الالغمی اجازه دادند تا سمت صدر ازمی را حفظ کند. هرچند او مدت کوتاهی در حکومت باقی ماند. مساجد و کاخهای شهر را سوزندند و بیشتر جمعیت مسلمان را کشتند. زنان و کودکان را به غراغروم بردند و محتویات خزانه خلیفه را به غراغروم انتقال دادند. طبق گزارش های ایرانی که ممکن است کمی مبالغ آمیز باشند، بین 800 هزار تا دو میلیون نفر در داخل حصارهای شهر به قتل رسیدند. مغان مجبور به ترک اردوگاه های خود شدند زیرا بوی اجساد رو به فسد تحمل ناپذیر گردیده بود. مسیحیان خاور میان که 500 سال تحت سلطه مسلمانان زندگی کرده بودند مغان را به عنوان منجیان خود به شما آوردند سقوط بغداد از نظر مسیحیان یک پیروزی به شما رامد را هنگامی که هولاگو به سوریه لشکر کشی کرد مسیحیان بسیاری با او بیعت کردند و هدایایی به او دادند یک وقای نگار ارمنی نوشت بغداد در طول دوران تفوق مانند خونخاری سیری ناپذیر تمام جهان را بل بود و اکنون به دلیل خونهایی که ریخته و شری که ایجاد کرده است بعد از پرشدن پیمانی شرارتش، کیفر یافته است. از آن پس مسیحیان دیگر تحت پیگرد خاندان قدرتمند خلفای عباسی قرار نمی گرفتند. در این هنگام، تنها نیروی اسلامی نسبتاً بزرگ باقی مانده که مغلان را نگران می کرد، مصر تحت سلطه ممالیک بود. حولاگو نامه زیر را برای آنها فرستاد. شنیده اید که ما چگونه امپراتوری پهناوری را تسخیر کرده ایم و زمین را از نابسامانی هایی که لچک دارش ساخته بود پاک نموده ایم بر شماست که بگریزید و بر ماست که تعقیب کنیم و به کجا فرار خواهید کرد و از چه راهی از برابر ما خواهید گریخت اسباد ما توند رو تیرهای ما تیز شمشیرهای ما مانند برق قلب های ما به سختی کوه و سربازان ما به شمار شنها هستند دژها ما را باز نخواهند داشت و سلاها ما را متوقف نخواهند کرد دعاهای شما به آسمان در برابر ما بی است با وجود این مغلان هرگز این تهدید را عملی نکردند در سال 1260 میلادی نیروهای هولاگو از سوارانی که از پاییز سال پیش در مسیر یام همان شبکه ارتباطات مغولان طی طریق نموده بودند، اخباری را دریافت کردند. آنها میتاختند تا به هولاگو اطلاع دهند که مونگوقا آن درگذشته است. او هنگام عملیات نظامی به همراه قوبیلای بر ضد سلسله سونگ در چین به اسهال خونی مبتلا شده و درگذشته بود. هولاگو بلا نیروهایش را عقب کشید و در همان نزدیکی منتظر ماند و اندیشید که چه اقدامی در پیش بگیرد. در این زمان منازعه دیگری بر سر جانشینی در گرفته بود و تا زمان انتخاب خانی جدید دستگاه امپراتوری تا حد رکود فرسوده شد. منازعه بر سر جانشینی برادران منگوغان، هولاگو، قوبیلای و عریق بوغا بر سر منصب خانه بزرگ با یکدیگر رقابت داشتند. هولاگو فرمانده بزرگی بود و ایران را تسخیر کرده بود و قوبیلای پیروزمندانه به چین لشکرکشی کرده و در آنجا پایتختی تابستانی برای امپراتوری بنا نموده بود. عریق بوغا در سرزمین مرکزی مغولان باقی مانده و به واسطه اقا و شیوه زندگی سنتی قهرمانانه مغولی هامیانی به دست آورده بود برعکس در مورد هولاگو ادهی تصور می که او زندگی ملایم شهرها را پذیرفته است و در مورد غوبیلای معتقد بودند که او مدت زیادی در چین اقامت کرده است و او را متهم می که بیشتر به چینی ها نزدیک است تا مقلان درست هنگامی که هولاگو در حال دریافت خبره در گزشت بود و غوبیلای با سلسلی سونگ در چین می جنگید. عریق بغا و پیروانش سپاهی تشکیل دادند تا از ادعای او برای جانشینی به عنوان خان دفاع کنند هنگامی که خبره در گزشت به چین رسید غوبیلای که نقشه های عریق بغا را پیش بینی می کرد. یک غوریلتای از حامیان خود برپا کرد و در روز پنجم مه سال 1260 میلادی پیشاپیش خود را خان اعلام کرد جنگ داخلی میان دو دسته در گرفت هولاگو که هنوز در خواهر میانه بود جانب غوبیلای را گرفت هرچند که هولاگو خود دارای جاه طلبی برای رسیدن به منصب خان بزرگ بود میترسید که اگر عریق بغا بر تخت خانی جلوز کند او قدرتی را که در آن هنگام دارا بود از دست بدهد از میان رفتن وحدت آشکار شد که حریق بوغا حریف قبیله‌ای که توانست عنوان خان را حفظ کند نیست حریق بوغا در سال 1264 میلادی از قبیله‌ای شکست خورد اما با آنکه قبیله‌ای پیروزمندانه به منصب خان بزرگ رسیده بود موقعیتش مانند موقعیت چنگیز یا اوتا یا مونگوقا آن نبود و به این ترتیب امپراتوری از هم گسیخت. نه تنها خاندان سلطنتی دوچار اختلاف شد، بلکه خود امپراتوری به گروه های آشتی نپذیر تقسیم شد. برکه خانه اردوی زرین که مسلمان بود، خشمدین از نابودی اسلام به دست مغلان جانب ممالیک مصر را گرفت و به هولاگو اعلان جنگ کرد. هلاگو از اشتیاق خود برای خان شدن منصرف شد و توجه خود را به دفع نیروهای برک معتوف کرد. قوبیلای خان جدید اقدامی برای کمک به هلاگو نکرد ولی به او اجازه داد که به اداره امور خود بپردازد. بولوس ها به استقلال داخلی نسبی رسیده بودند و امپراتوری دیگر به تابعیت از سیاست های یک فرمان روا وحدت نیافد. ایر خانشین ایران تحت حکومت هولاگو، خانشین جغتای تحت حکومت عریق بغا و اردوی زرین برکه خارج از سلطه قبیلای بودند. قبیلای به جای ایجاد وحدت اجباری خود را در امور حکومتی چین غرق کرد. فروپاشی وحدت در امپراتوری مقل منجب زوالی فوری نشد. به جای آن، هر یک از اولوس به طور مستقل به موجودیت خود ادامه داد. رهبران اولوس ها از مدت ها پیش از آن شروع به پذیرش ادیان محلی نمودند و تدریجاً وجه اشتراک اولوس ها کمتر و کمتر شد. در حالی که قبیلای با آین بودایی پیوند نزدیکی برقرار نمود، رهبران اولوس های غربی به اسلام گرویدند. همسر هولاگو مسیحی بود. خانشین های مختلف از طریق دین، ازدواج و وضع قوانین منطبق با خصوصیت ناحیه تدریجان خود را با جمعیت هایی که آنها حکومت می کردند وفق دادند غبیلای در سراسر زندگی به نقض سنت مقلی و پذیرش شیوه زندگی اسکان یافته چینی متهم شد زیرا خود را در تجمل چینی محسور ساخته بود اما او هم مطابق با سنت مغولی و هم طبق سنت چینی پرورشی یافته بود. در زمان کودکی او بسیاری از لله هایش چینی بودند. چابی، همسر ارشد قوبیلای بسیاری از سیاست های مغولان را کاملا غیر عملی به شمار می و قوبیلای را به ایجاد یک سلسله مغول به سبک امپراتوران بزرگ چین تشویق می کرد. به این شکل حکومت غوبیلای در سراسر دوران خود تمدنهای کوچ نشین و اسکانیافت را به هم پیوند داد. سلسله یوان در سال 1260 میلادی غوبیلای قان با اعلام سلسله یوان یا منشع بزرگ به عنوان سلسله حکومتی مغل در چین آغاز دوران جدیدی را در تاریخ آسیا اعلان کرد. دوران سلسله یوان قوبیلای نشان داد که این دوران یکی از بازترین دوران ها در تاریخ چین بوده است. به تشویق قوبیلای، بازرگانان و فرستادگان سیاسی آزادانه میان چین و سرزمین های خارجی سفر می کردند. سلسله یوان همچنین با پیوند دادن ایالات جنوبی و شمالی چین به یکدیگر، چین را از لحاظ سیاسی وحدت بخشید. جمعیت مغول در چین در مقایست با میلیون ها چینی تنها چند صد هزار نفر بود. غبیلای اگر چه مشاورانی چینی داشت اما تمام مناسب کلیدی حکومت را به طور غط به مغولان سپرد. و به این ترتیب حفظ منافع مغولان را محقق ساخت. غبیلای هنگام گذینش معموران حکومت یک شیوه معکد طبق بندی نجادی را به کار می گرفت. کسانی که تبار مغل داشتند در بالاترین رتبه قرار می گرفتند و برای تصدی سمت‌ها مناسب‌تر از دیگران به شمار می‌رفتند. پس از آنها افرادی قرار داشتند که تبار آسیای میانه ای داشتند و برای مغولان کار می‌کردند و در آخر اهالی چین شمالی و بعد چین جنوبی که قوبیلای به آنها اعتماد نداشت قرار داشتند. قوبیلای برای ایجاد مشروعیت برای سلسله به صرف وقت و پول پرداخت تا همه اسباب یک حکومت رسمی را فراهم آورد او برای حفظ نظم حکومت متمرکزی متشکل از سه اداره به وجود آورد دارال انشاء که احددار همه امور غیر نظامی بود شورای مشاوران معتمد که امور نظامی را اداره می کرد و دیوان اشراف که بر تمام معموران حکومتی در امپراتوری نظارت می کرد هر اداره نمایندگانی در سراسر امپراتوری داشت که تصمیمات اتخاذ شده از سوی قبیلای را اجرا می‌کردند. پایتخت‌های جدید قبیلای دو پایتخت را به عنوان مقر حکومت خود تعیین کرد. شانگتو پایتخت تابستانی شهری بود دارای سه محوطه حصاردار متحد المركز به نامهای شهر بیرونی، شهر امپراتوری و شهر کاخ لیو پین چونگ مئمار چینی پایتخت تخت را به صورت مجموعه ای از مربع های متحدال مرکز سرراهی نمود که هر زل یک مربع رو به سمت یکی از چهار جهت قطب نما قرار داشت هشت سومه بودایی در هشت گوشه شهر یعنی در چهار جهت قطب نما و در چهار نقطه میان جهات ساخته شد این هشت سومه هشت قاعده کتاب الهیات چینی موسوم به یی را منعکس می ساختند. غوبیلای این ته را برای تاتو یا بیجینگ کنونی همان پکن پایتخت اصلی خود رو نوشت برداری کرد. ساخت تاتو در سال 1266 میلادی آغاز شد. محووتی میانی در تاتو اقامتگاه غوبیلای و دربار او بود و محووتی بعدی جایگاه معموران حکومتی بود سایر افراد شهروندان عادی بیرون از این حصار در قسمت غیر محصور شهر به سر می بردند همچنین یورت هایی برای اعضای خاندان سلطنت وجود داشت که در حومه شهر در کنار دریاچه ها و باقه های شهر پراکنده بودند منازل غوبیلای نیز به پاس احترام به پیشینه مغولی او به گونهی طراحی شدند که همانند داخل یک یورت سنتی مغولی به نظر برسند و به دیوارهای آنها غالیچه هایی آویخت شد. غوبیلایی با تفکیه که هدفمند طبقات در داخل این محووتها نوعی سلسل مراتب به وجود آورده بود. دیگر دوران چنگیز خان که آن حتی اشراف مانند مغولان عادی زندگی می سپری شده بود. در گذشته چنگیز کوشیده بود تا ثروت خود را در میان حامیانش توضیح کند. در حالی که در دوران غوبیلای با اندوخت شدن دائمی ثروت در دست طبقات برتر ماهیت بنیادین جامعه مقل دگرگون شد و بسیاری از افراد سروتمندتر دیگر خود را کوچ نشین نمی خاندند. در بار غوبیلای غا آن به کاخی برای خوشگذرانی تبدیل شد. محلی که در آن اشراف نچندان به واسطه مهارت نظامی مانند دوران چنگیز بلکه تنها به واسطه ثروت مشخص می شدند مارکو بازرگان ونیزی پس از دیدار از دربار غوبیلای غاان در تاتو شهر را چونین توصیف کرد شهر پر از خانه های بزرگ و مجلل مسافر ها و منازل است، در سراسر دو سمت تمام خیابان های اصلی غرفه ها و مغازه هایی از همه نوع قرار دارند همه یه ساختمان ها در سراسر شهر مربشک و طبق قائد ساخته شده اند و در هر نقطه خانه های وسیع و مجلل با خیات ها و باغ های فراوان قرار دارند این اما به رؤس های خانواده ها اختصاص داده شده اند به طوری که یک نقطه متعلق به فلان شخص است که نماینده فلان خانواده است دیگری به نماینده خانواده ای دیگر تعلق دارد و به همین ترتیب در تمام مسیر شکووفایی اقتصاد چین یکی از بزرگترین مشخصه های شهر تاتو آبراه عظیم آن بود این آبراه دو۹ده کیلومری که طرح قوبیایی بود به دست سه میلیون کارگر ساخته شد. این آبراه شهر تاتو در چین شمالی را به چین جنوبی و رود یانگتس متصل کرد حمل غل در داخل کشور را آسان ساخت و به وحدت یافتن دناهیه کمک کرد. غوبیلای صادقانه به پیشرفت چین علاقه داشت و آبراه بخشی از نقشه او برای احیای اقتصاد چین بود. شهر تاتو مدت کوتاهی پس از تکمیل شدن به صورت یک بندر داخلی پر رفت و آمد درآمد. آمد. برای رشد تجارت گسترش شرکت های تجاری را مورد تشویق قرار داد و به تضمین سفرهای بازرگانان کمک کرد. قوبیلای استفاده از اسکناس را رواج داد و اصرار کرد که همه بازرگانانی که خواهان تجارت در چین بودند، طلا و نقره خود را به اسکناس منتشر شده از سوی حکومت تبدیل کنند. به این ترتیب حکومت می توانست طلا و نقره را به عنوان منبع آماده ای از سرمایه برای عملیات نظامی آینده ذخیره کند. این رویه بعدها از سوی اولوس های غربی نیز به کار گرفته شد. در دوران حکومت غوبیلای هم تجارت زمینی و هم تجارت دریایی پیشرفت کرد و بازرگانان آروپایی مانند مارکوپولو و پدر اونیکولو به چین سفر کردند. غبیلای صدور محصولات چین از غبیل ظروف چینی، عبری شب، مروارید، شکر و برنج را تشویق کرد و نافگانی از کشتی تجاری ساخته شد تا این کالاها را در امتداد سواهل جنوب آسیا و خلیج فارس به فروش برسانند. ظروف چینی دوره یوان که دیگر با سنت چینی کوهن پیوندی نداشتند و با ترهای ابدایی تزگین شده بودند، در خارج بسیار مورد پسند مردم قرار گرفتند. قوبیلای کار هنرمندان چینی را مورد تشویق قرار داد و آنها را معمور کرد تا تعداد زیادی نقاشی و مجسمه زیبا از اسب‌ها تهیه کنند. پزشکان نیز مورد تشویق قوبیلای قرار گرفتند و او تعدادی بیمارستان و یک مدرسه پزشکی بنا کرد. اولاگو به پیروی از علاقه قوبیلای به هنرها و علوم رصدخانی در ایران بنا کرد. قوبیلای به نوبه خود ستاره شناسان ایرانی درباره هولاگو را به پایتخت خود دعوت کرد تا ادوات مشابهی را در آنجا بسازند. نیروی دریایی مغول با وجود حکومت روشنفکرانه قوبیلای در چین، خاندان سونگ به شورش بر ضد مغولان ادامه داد. خاندان سونگ نافگانی فراهم کرد و طرف این از سال 1275 تا سال 1276 میلادی به چند نبرد دریایی با یکدیگر دست زدند مغولان هرچند بیشتر سوارکار بودند تا دریا نبرد اما به سرعت در جنگ دریایی مهارت یافتند و کشتی های دشمن را شکست دادند غوبیلای در خشکی به کمک مهندسان ایرانی فن محاصره که از برادرش هولاگو قرض گرفته بود نیروهای سونگ را شکست داد. گوبیلای هم در طول سرکوب شورش خاندان سونگ در سال 1279 میلادی و هم پس از آن در اقدامی توسعه طلبانه دو تلاش ناموفق برای تصرف ژاپن در سال‌های 1274 و 1281 میلادی به عمل آورد. هر دو بار توفان و بادهای شدید مانه از قدم گذاشتن نیروهای مغل به جزیره ژاپن گردیدند و هزاران سرواز مغل گرخ شدند. جاپانی ها این بخت را به کامیکازه یا بادهای الهی نسبت دادند.